گر تیغ قهر برکشد نبی و ولی سر کشد وگر قمزه لطف به جنباند بدان به نیکان در رساند گر به محشر خطاب قهر کنند را چه جای معذرت است پرده از روی لطف گو بردار کشقیا را امید مغفرت است